عزیزان، تا حالا به این فکر کردین که شما کی هستین؟ واقعا شما کی هستین؟ همسر شما کیه؟ دوست های گالب، بدانش کدیه کتاب مقدس است و سری درس های مخصوص خانواده و ازدواج خوش اومدین. امروز ما باز هم مطالعه اهمیت تفاهم متقابل رو ادامه خواهیم داد. اما برای درک همسرمون، ما باید ابتدا خودمون رو درک کنیم. برای درک خودمون، باید خودی رو که خدا خلق کرده درک کنیم. ما نگاهی خواهیم داشت به تقدس هویت شخصی و فردیت خودمون. برای رشد یگانگی ما باید شخصی رو که خدا خلق کرده درک کنیم عرج بذاریم و محترم بشموریم. چیزهای زیادی هست که باید یاد بگیریم. دامی کنیم خدا به شما چشمانی بده ببینید و گوشهایی که بشنوید که اون امروز چی برای آموختن به شما داره؟ این شما بین هم معلمه شما. در این مطالعات در مورد ازدواج از پنج حلقه صحبت میکنیم. پنج حلقه ای که ابعاد مختلف یگانگی بین زن و شوهر رو نشون میدن. وقتی که این حلقه ها رو یکی یکی بررسی میکردیم، مکالمه رو به عنوان اولین حلقه که از چپ به راست وصل شده بررسی کردیم. بعد سازگاری رو دیدیم و بعد محبت و حالا در حال بررسی درک متقابل یا تفاهم هستیم گفتیم که گفتگو ابزاری برای حفظ یگانگی هست اگر گفتگو داشته باشید میتونید روی یگانگیتون کار کنید اگر گفتگو وجود نداشته باشه نمیتونید به خوبی روی یگانگیتون کار کنید و گفتیم که سازگاری نشانه یگانگی هست و از چیزهای زیادی تحت عنوان سازگاری بحث کردیم بعد گفتیم که محبت نیروی محرکه ای هست که یگانگی رو به پیش میبره. این نیروی محرکه ازدواج مسیحی هست و باید مرتباً به خاطر بیاریم که منظور از محبت در اینجا محبت آگاپه هست. این همون محبتی هست که از جنس خود خداست. این محبت مسیحه. این همون محبتیه که سمره روحه. ما باید اقرار کنیم که نمیتونیم این گونه محبت کنیم. تمامی این چیزها واقعا غیر هستند. ما در همون ابتدا یاد گرفتیم که مگر خود خدا کمک کنه تا بتونیم چون این محبتی داشته باشیم. پس باید درک کنیم که ترتیب این ازدواج نقشه خدا هست که در کتاب مقدس قید شده و اگر ازدواج ازدواجی مسیحی باشه، اگر ازدواجی طبق نظر خدا باشه، ما میتونیم این چیزها رو در مورد اون بگیم. خدا این رو در کلامش مقرر کرده. اون رو توسط روحش عملی کرده و فقط خدا میتونه با فیزش اون رو نگه داره. اما الان گفتیم که تفاهم رشد یگانگی هست. در جلسه گذشته نتونستیم به موضوعمون بپردازیم. همونطور که گفتم هر چقدر سنم بالاتر رفته بیشتر برام طول کشیده تا بتونم چیزی رو جمع کنم. دفعه گذشته یه خورده شرمنده شدم چون که نتونستم موضوع رو تموم کنم و به این دلیل این دفعه دوست دارم چیزی رو که شروع کردیم تموم کنم. دوباره به مفهوم تفاهم برمیگردیم که گفتیم رشد یگانگی هست. ما اهمیت درک متقابل رو ملاحظه کردیم. یکی از راه های ملاحظه اهمیت درک متقابل اینه که خطرات عدم تفاهم رو ملاحظه کنیم. چون اگر ما همسرمون رو درک نکنیم، بزرگترین خطر این هست که کس دیگری او رو درک کنه و یا اونها کس دیگری رو درک کنند و این البته یکی از چیزهایی هست که طلاق رو در فرهنگ امروزی مَشایعه کرده. اگر شما اهمیت تفاهم رو ملاحظه کنید، باید اون رو هم مانند حلقه های دیگه ملاحظه کنید. محبت کردن زمان میبره، گفتگو کردن زمان میبره و تفاهم هم زمان خواهد برد. همینطور طور چالش های درک متقابل رو ملاحظه کردیم. و امیدوارم که شما وقتی سعی دارید کس دیگری رو درک بکنید، چالشی رو که در پیش رو دارید بفهمید. شما واقعا وقتی تصمیم میگیرید خودتون رو درک کنید، چالشی رو میپذیرید. اینجا چالشی هم برای درک متقابل وجود داره. اگر شما بخواید همدیگر رو درک کنید، باید تفاوت بین مرد و زن رو درک کنید. باید اهمیت گذشته ی طرف مقابل رو درک کنید. شما باید بخواید که همسرتون رو درک کنید و اگر واقعا این رو بخواید اون موقع وارد سطح عمیق‌تری از گفتگوها خواهید شد این یک الزامه اگر بخواید همدیگر رو درک کنید باید در سطح عمیق‌تری گفتگو کنید باید به همسرتون گوش کنید باید واقعا همسرتون رو ببینید از خدا بخواهید که چشمانی به شما بده که همسرتون رو ببینید و گوش‌هایی بده که او رو بشنوید باید همسرتون رو محبت کنید و اگر میخواید در سطح عمیق‌تری گفتگو کنید باید این جسارت رو داشته باشید که خودتون رو در معرض هایی قرار بدید. اگر شما بگید لطفاً اون نمک رو بده و یا امروز مثل که میخواد بارون بیاد خب این نوع گفتگوها جسارتی نمیخواد. اما اگر بخواید در سطح عمیق‌تری گفتگو کنید بعد وقتی وارد این سطح عمیق گفتگو بشید همسرتون چیزی رو که شما میخواهید بشنوید نخواهد گفت. عداقل اگر همسر خوبی باشه و اگر واقعا شما رو دوست داره اون موقع بهترین های خدا رو برای شما میخواد بعد وقتی شما این چیزها رو میشنوید دلتون نمیخواد بشنوید چون که اونها رو انکار میکنید و نمیخواید با اونها مواجه بشید پس باید یاد بگیرید که چطور از اوطه مشاجرات بر بیاید و چطور خشمتون رو کنترل کنید و بعد وقتی به این مرحله رسیدید باید اهمیت شعن و اعتبار رو درک کنید شعن و اعتباری درست شعن و همسرتون و شعن و خودتون هم همسرتون به این نیاز داره و هم خود شما وقتی اهمیت این رو درد کردید اون موقع گفتگوها تماما منفی نخواهد بود مکالمات سازنده خواهد بود و شما همسرتون رو بنا کرد و به او کمک خواهید کرد شعن و منزلت خودش رو پیدا کنه و البته او هم همین کار رو برای شما خواهد کرد حالا دو چالش دیگه هم داریم که به اونها نپرداختیم. و من میخوام در همین ابتدای جلسه قدری روی اونها تمرکز بکنیم. گفتیم که اگر میخواید همدیگر رو درک کنید، باید تقدس فردیت رو درک کنید. واقعیت اینه که هر انسان این یک فرد هست و قصد خدا همین بوده که او منحصر به فرد باشه. باز هم تکرار میکنم، تعریف کلمه خود اینه، فردیت منحصر به فرد بودن هر شخصی هست که او رو از دیگر اشخاص متمایز میکنه. خدا هر کسی رو خلق کرده که خودش باشه. هر فردی در روی زمین یک فردیت مقدس داره که منحصر به فرد بودن او رو از هر کس دیگری در این جهان تعیین می کنه. راه های که می شه اینو عنوان کرد اینه که ما باید تقدس هویت شخصی رو درک کنیم. حالا بذارید توضیح بدم که منظورم چیه. سالها پیش از یک روانشناس مسیحی برجسته که یک خادم هم بود و کلیسایی پنج هزار نفره رو شبانی میکرد شنیدم که یک الهیاتی هست که مردم رو مریض میکنه. در اون زمان من کاملا مریض بودم. پس بعد از اینکه او صحبتهاش رو تموم کرد از او پرسیدم اون الهیاتی که مردم رو بیمار میکنه چیه؟ او گفت: اون چیزیه که بسیاری از مردم کتاب مقدس رو تعلیم میدن که به ما میگه ما چطور باید با خودمون رفتار کنیم خودمون رو چطور ببینیم و مردم این رو بد به کار میگیرن. مردم این رو درست تفسیر نمیکنند و این منجر به بیماری بسیاری از مردم میشه. من گفتم خب کتاب مقدس درباره روی کرد ما به مسئله خودمون چی میگه؟ او گفت: «خب چرا خودت مطالعه نمی کنی؟ تو یک دانشجوی کتاب مقدس هستی، راهنمای مطالعه کتاب مقدس رو بردار و مطالعه کن. خب من یک کشولایات برداشتم و به هر لغتی که مربوط به خود میشد و به هر شکلی از اون مراجعه کردم، و واقعا به مکاشفه ای از آنچه که کتاب مقدس درباره خودمون تعلیم میداد دست پیدا کردم. رو راست بگم من چیزهای زیادی در مورد اینکه چطور باید خودم رو ملاحظه کنم یاد گرفته بودم که هیچ کدام کتاب مقدسی نبودم. وقتی که داشتم مطالعه می کردم به این آیه نگاه کردم که اگر بخواهید به کلمه خود فکر کنید شما هم باید به این آیه نگاه کنید. دوم قرنتیان ده دوازده البته ما جرأت اون رو نداریم که خود رو با کسانی که خود را اینقدر بزرگ میدونن مقایسه کنیم و یا در یک ست قرار بدیم. وقتی اونها خودشون رو با یکدیگر میسنجن و با همدیگر مقایسه میکنن نشان میدن که چقدر احمق هستن. این خیلی احمقانه است. این طور نیست. این به ما میگه که چطور به خودمون نگاه کنیم. خب تعریفی که از خود کردیم یادتون هست؟ فردیت منحصر به فرد بودنه. منحصر به فرد بودن هر شخصیه که او را از دیگر اشخاص متمایز میکنه. این معنی کلمه خود هست. حالا با در نظر گرفتن این تعریف، وقتی دنبال کلمه خود در کتاب مقدس میگردید، کاربرد های جالبی از این کلمه را میبینید. مثلا عیسی میگه چه سود دارد که آدم تمام جهان را ببرد اما جان خود را ببازد و انسان چه میتواند بدهد تا جان خود را باز یابد؟ این سؤال عمیقی هست. چیزی که عیسی میگه اینه، این هویت مقدس و این فردیت مقدس هست که شما را از هر کس دیگری متمایز میکنه. این مقدس هست به این دلیل که خدا شما رو خلق کرده که اونطور باشید و اگر کسی تمام دنیا رو به شما بده و فردیت شما را بگیره و شما بپذیرید، این حماقت محضه. آیه میگه انسان چی میتونه در مقابل خودش دریافت کنه؟ این سوال عمیقیه. ایسا گفته حتی تمام جهان هم به این نمیارزه اما کتاب مقدس در عهد قدیم داستانی به ما میگه که این رو به خوبی به تصویر میکشه مردم خودشون رو عوض میکنن شما نمونه ای رو دارید که خودش رو به کاسه یاش میفروشه این شخص عیسو بود که آشکارا حق زادگی خودش رو خارش مرد یعنی همون نقشه مقدسی رو که خدا برای اون منحصرا تر کرده بود او به کاسه یاش فرو. او به وضوح اون رو خارش مرد و در مقابل یک کاسه آش اون رو به برادرش فروخت. اما بعدها از او سوال شده تو کی هستی؟ و او صدای خودش رو بلند کرده و ناله کرده چون که خودش رو به کاسه ی آش فروخته بود. ببینید این روشیه که کتاب مقدس کلمه ی خود رو به کار میبره. عیسی تعلیم میده که هر کاری میکنید خودتون رو از دست ندید. یکی از اولین محصولات جانبی چیزی که ما به اون نجات میگیم اینه که خودمون رو پیدا میکنیم. پولس به فلیمون ثروتمند غیر یهودی که با هدایت او نجات یافته بود گفته تو خودت رو به من مدیون هستی. چون این فردیت منحصر به فردی که خدا برای این مرد در نظر داشت اگر پولس او رو به مسیح هدایت نمی کرد از دست میداد. اما وقتی پولس او رو به مسیح هدایت کرد او اون رو باز یافت. وقتی پولوس به تیموتاوس میگه چطور مشورت بده او میگه کسانی که به اونها مشورت میدی مشکلشون اینه که با خودشون مخالفت میکنن. اونها با نقشه خدا برای خودشون مخالفت میکنن و وظیفه تو به عنوان یک مشاور اینه که به اونها کمک کنی خودشون رو پیدا کنن. بعد او به تیموتاوس میگه که چطور این کارو بکنه اما ببینید این نحوه بکارگیری کلمه خود در کتاب مقدس هست و اون بر چیزی تمرکز داره که میتونیم به اون تقدس فردیت یا هویت شخصی بگیم در عهد قدیم درست در همون ابتدا وقتی خدا با انسان وارد گفتگو میشه او گفتگوی خودش رو با انسان با سوالاتی شروع میکنه چهار چیز اول که خدا به انسان میگه سوال هستن اولیش اینه کجا هستی وقتی خدا از انسان یا خالق از مخلوق میپرسه کجا هستی آیا فکر میکنید که خالق جواب این سوال رو نمیدونه آیا فکر میکنید که او از وضعیت مخلوقش اطلاع نداره البته که اینطور نیست این غیر قابل تصوره هدف از اولین سوالی که خدا از انسان میپرسه که کجا هستی اینه. به این دلیله که میخواد انسان رو به فکر وادار کنه در مورد اینکه کجا قرار بوده باشه و حالا اونجا نیست پس از شما میپرسه کجا هستی؟ به جایی که هستید فکر کنید چون در جایی که قرار هست باشید نیستید. دومین سوالی که خدا میپرسه اینه کی به تو گفت؟ این هم سوال جالبیه؟ هدف از اولین سوال به نظر میرسه این بوده که انسان در جایی قرار داشته که نباید اونجا می بود. هدف دومین سوال چیه؟ به نظر میرسه هدف دومین سوال این باشه. خدا با انسان صحبت میکنه و انسان حتی این رو نمیفهمد خدا میخواد انسان بفهمه که به چه کسی گوش میکنه؟ خدا میخواد انسان رو از این واقعیت آگاه کنه که خدا او رو خلق کرده تا او اونطوری که می خواد باشه پس این سوال که کی به تو گفت به نوعی سوال دیگری رو مطرح می کنه آیا میدونی که این من هستم که به تو میگم؟ حالا من معتقدم که باید دیدگاههایی در مورد این سوالات به دست بیاریم اولا اونها در کتاب پیدایش هستند و کتاب پیدایش کتاب آغازها هست. اون مثل کلمه ژنتیک است. در کتاب پیدایش خدا در مورد ابتدای بسیاری از چیزها با ما صحبت میکنه. او این کار رو به این دلیل نمیکنه که احساس بکنه توضیحی به ما بدهکار هست و او حق نداشته قبل از اینکه با ما مشورت کنه ما رو وارد نقشه خودش بکنه. بسیاری از مردم در مورد کتاب پیدایش اینطور فکر میکنند. دلیلی که خدا در کتاب پیدایش نحوه خلقت بسیاری از چیزها رو به تصویر میکشه اینه که خدا میخواد ما درک کنیم که خدا مقرر کرده که اون چیزها امروز کجا باشن ما در ابتدای این کلاس دیدیم که وقتی عیسی در مورد ازدواج صحبت میکرد وقتی از او درباره ازدواج سوال کردن او جواب داد اگر میخواهید بدونید که ازدواج چطور باید باشه باید به ابتدای خلقت برگردید و ببینید که ازدواج در ابتدا چگونه بود این کلیدی از تمام کتاب پیدایش به ما میده. به این دلیلی که کتاب پیدایش نوشته شده، چیزهای زیادی مانند ازدواج وجود دارند که ما واقعا برای درکشون باید به ابتدای اونها مراجعه کنیم و عیسی این کلید رو به ما داده. او گفته اگر میخواید درک کنید هر چیزی چطور باید باشه به پیدایش برگردید و اون را از ابتدای خلقتش مطالعه کنید تا قصد خدا رو درک کنید. خب اینجا توسط این سوالات چه چیزی شرط داده شده؟ وقتی به کتاب خروج و تصنیه برسید، این رو متوجه میشی. موسی موسا وقتی بالای کوه سینا بود، این مکاشفه رو دریافت کرد. موسا حداقل سه بار با روزه و دعای چهل روزه به بالای کوه رفت. او میخواست که کلامی از خداوند دریافت کنه که به او کمک کنه تا این مردم گناهکار و آسی رو که در پای کوه بودند درک کنه. او رهبر اونها بود و گفت خدایا من این مردم رو درک نمی کنم من نمیتونم اونها رو رهبری کنم من باید کلامی از تو دریافت کنم تا بتونم اونها رو رهبری کنم و در نتیجه این دعاهای شبان روزی او خدا پنج کتاب پیدایش خروج، لاویان، اعداد و تصنیه رو به او داد اما اگر دیدگاهی رو که طی اون خدا این مکاشفه رو به موساداد ببینید اون به شما کمک میکنه که وقتی شروع به خواندن کتاب پیدایش میکنید، اون رو درک کنید. اینجا چی شرط داده شده؟ خب به نظر من این چیزیه که شرط داده شده. خدا به موسا میگه موسا، تمام این مردمی که در پای کوه به من پوش کرده اند، مشکلشون این نیست که کلامی از من دریافت نکرده من همین الان کلامی به اونها میدم، اما مشکل اونها اینه. وقتی کلام من به اونها نشون بده که الان کجا هستن به جای اینکه به نور اون مکاشفه بیان و اونجا باشند، پنهان خواهند شد وقتی خدا از آدم پرسید کجا هستی آدم جواب داد صدای تو رو شنیدم اما وقتی شنیدم اون منو ترسون پس من مخفی شدم چون صدای تو منو میترسونه اون اوریانی منو آشکار میکنه به این دلیل من مخفی شدم این بیان زیبایی در مورد طبیعت انسان هست اما این چیزی که اینجا شرط داده میشه نه تنها در ابتدا همان گونه بوده بلکه امروز نیز باید همون طور باشه آیا باور میکنید که خدا امروز هم با ما حرف میزنه آیا باور میکنید که امروز هم خدا همون سوال رو از شما میپرسه کجا هستی و شما با زمین باطن خودتون میدونید که باید جایی باشید اما اونجا نیستی و خدا برای هشدار دادن به شما از شما میپرسه کجا هستید من فکر میکنم ما به این بحران هویت میگیم این همون چیزیه که وقتی سالها پیش کلام خدا برای من باز شد من به خودم سر و سامانی دادم و حالا سؤال دوم چه کسی به شما گفت؟ عملا این نیست که کی به شما گفت در زبان ابری ترجمه بهترش اینه که چه کسی باعث شد تا این رو بدونی؟ تو برهنه هستی و صدای من برهنگی تو رو آشکار می کنه و تو می مخفی مقدی بشی چه کسی به تو گفت که اوریان هستی؟ به داستان در پیدایش سه به محض اینکه اونها از درخت ممنوع خوردن فهمیدند که اوریان هستند خدا این موضوع رو کاملا میدونه بر اون موضوع اشراف داره او میگه حالا که شما میدونید اوریان هستید فکر میکنید کی باعث شده که شما بدونید که اوریان هستید البته جوابش اینه که خدای مهربان باعث شد که شما اوریانیتون رو بدونید چون او میخواد در مورد جایی که هستید کاری انجام بدید سوال دوم به نوع وادار به اعتراف وادار آیا از درخت ممنوعه خوردی؟ حالا رو راست بگم. من فکر میکنم که این تمثیل هست و به این معنی نیست که اونها افسانه های رمزی هستند و هیچ مفهومی ندارن. تمثیل داستانی هست که در اون مردم مکانها و چیزها معنی عمیق دارند که معمولا از اهمیت روحانی برخورداره. این تعریف تمثیل هست. آیا شما تا حالا درختی به نام درخت معرفت دیدید؟ یا تا حالا درختی دیدید که اسمش درخت حیات باشه و میوهش میوه حیات باشه؟ آیا تا حالا شنیدید که صدایی قدم بزنه؟ این حتما زبان استعاره است. اما اون تعلیمی داره. تعلیم اون چیه؟ چه حقیقتی رو تعلیم میده؟ چیزی که درختان تعلیم میدن این هست: من شما رو توی این جهان قرار دادم، من بهتر از شما میدونم نیازهای شما چی هستن و میتونم توسط این درختان تمامی نیازهای شما رو رفع کنم. اگر شما بر اساس هایی که من برای شما قرار دادم از این درختان بهره برداری کنید، نیازهای شما تامین میشه. ترتیب هایی که خدا قرار داده اینه. اول درختان نیاز چشم اونها رو برآورده میکنند. در کتاب مقدس معنی اون طرز نگرش هست. شما چطور چیزها رو میبینید؟ خدا اینجا به زبان استعاره میگه بزرگترین نیازی که شما دارید به نظر من اینه که نشون بدید چیزها رو چطور میبینید اگر چشمان شما سالم هست تمام بدن شما پر از نور خواهد شد اما اگر چشمان شما طرز نگرش شما معیوب باشه تمام وجودتون پر از تاریکی خواهد شد طرز نگرش شما تا این اندازه اهمیت داره حالا درختانی که در باغ هستند نیاز چشمان شما رو رفت میکنند درسانی اونها نیاز شما به خوراک رو تأمین می کنند. منظور اینجا از خوراک تمام چیزهایی هست که نیاز دارید و تمام چیزهایی که می خواهید اگر این اولویت ها رو رعایت کنید به درخت حیات خواهید رسید خدا این رو در پیدایش دو و سه میگه وقتی آدم و هفوا گناهکار شدن در پیدایش سه توجه کنید که اونها در اولویت این درختان اشتباه کردند و سردرگم شدند. اونها از درختان ممنوعه به این ترتیب بهره گرفتند. اول چون اون برای خوراک خوب بود و بعد برای چشمان خوشایند بود به عبارت دیگه به لحاظ تمثیلی میگه انسان فقط محزنان زیست نمی کند بلکه به هر کلامی که از دهان خداوند صادر می شود انسان به این ترتیب زندگی می کند و به لحاظ تمثیلی پیدایش سه میگه من انسان رو در این جهان قرار دادم و او رو در تاریکی این جهان تنها با نگذاشتم. من کلام خودم رو به او خواهم داد، اما وقتی بدم، این کلام او را ناراحت خواهد کرد و او مخفی خواهد شد. چون که نیاز او را آشکار خواهد کرد، برهنگی او را آشکار خواهد کرد و اگر انسان نخواد اون کلام رو بپذیره، اون وقت باید تمام عمرش مخفی بمونه. این تعریف بزرگی از طبیعت انسانی هست. من این رو به یک دوست روانشناس نشون دادم و اون گفت که این بزرگترین تعریف از طبیعت انسان هست که من تا کنون دیدم. اما به این سؤال نگاه کنید. آیا از درخت ممنوعه خورده ای؟ معنیش اینه که آیا برای پاسخهایت به جای اشتباه نگاه کرده ای؟ من چند بار شما را در طی این دوره به چالش کشیدم. آیا شما درک درستی از چیزهایی مثل تعریف نقش مرد و تعریف نقش زن دارید؟ آیا اون رو از فرهنگ گرفتید یا از کتاب مقدس؟ روش دیگری برای پرسیدن همون سوال اینه: آیا شما از درخت درست خورده اید یا از درخت ممنوعه؟ آیا شما استنباطتون رو از کلام خدا میگیرید یا از فرهنگ؟ در مزمور یک شما تعریفی از چیزی میبینید که کتاب مقدس به اون مرد برکت یافته میگه. اون به شما میگه برکات چی هستند و چرا اون مرد برکت یافته هست؟ یکی از اولین چیزهایی که در مورد مرد برکت یافته به ما گفته شده اینه که او برکت یافته هست چون در مشورت شریران گامبر نمی داره. یک دقیقه به این فکر کنید. او در مشورت شریران گامبر نمی دارد و همین باعث برکت او می شود. حالا بذارید از شما بپرسم. آیا شما در مشورت شریران گامبر می دارید؟ وقتی مشکلی براتون پیش میاد، به دیدن شبانتون یا مشایخ کلیساتون میرید که اشخاصی خداشناس هستند، کتاب مقدس رو می‌دونن و سعی میکنند از خدا مشورت بگیرن یا به دیدن کسی میرید که مورد علاقه عموم هست، تایید شده و سکولار و خداشناس هست. و چون اونها تایید شده هستند و تحصیلات عالیه دارن، سکولار و خداشناس هستند، به حرفای اونها گوش خواهید داد و هرچی که اونها بگن انجام خواهید داد. مشورت شریج چیه؟ وقتی من به دانشکده الهیات رفتم ما غالبا به عنوان دانشجویان دانشکده وام می گرفتیم وقتی برای درخواست وام می رفتید تابلو کوچکی بود که روی اون نوشته شده بود اگر شما باهوش هستید چرا ثروتمند نیستید وقتی شما همیشه وام می گیرید این سؤال عمیقی هست و ما که دانشجویان دانشکده بودیم فکر می کردیم که همه چیز رو میدونیم اما این سؤال عمیقی بود اگر ما باهوش بودیم چرا اونقدر فقیر بودیم من فکر می کنم بسیاری از مردم باید این تابلو رو جایی بذارند که هر روز ببینند. اگر شما باهوش هستید، پس چرا خوشحال نیستید؟ یعنی اگر شما اونقدر باهوش هستید که همه این چیزها رو میدونید و کتاب مقدس رو خوب درک می کنید، پس چرا فکر می کنید فرهنگ عقاید بهتری در مورد این چیزها داره که نقشه اساسی ازدواج و خانواده هستن؟ خب شما چیکار کنید؟ اگر شما خانه شادی داشته باشید اون موقع قدرت بیشتری خواهید داشت اما ببینید واقعیت اینه که ازدواج و خانواده در فرهنگ ما همونطور که بارها گفته ایم مشکلات معیوس کننده ای دارند و من فکر می کنم زمانش رسیده که ما از خودمون بپرسیم آیا ما از افراد خدا مشورت خواهیم گرفت که هیچ کاربردی نداره یا به نقشه اساسی و اصول ازدواج و خانواده طبق نقشه خدا در کتاب مقدس مراجعه خواهیم کرد. من فکر میکنم این تمثیل همون سوال هست که میپرسه آیا شما از درخت ممنوعه خورده اید؟ سوال بعدی اینه چیکار کرده اید؟ کلمه اعتراف در کتاب مقدس کلمه مرکب هست اون کلمه هست که برای گفتن و صحبت کردن هست و کلمه که برای مطابقت و یکسانی به کار میره حرف زدن یکسان، گفتن همون چیز در واقع این معنی اعتراف هست به عبارت دیگه معنی اعتراف موافقت با خدا هست. گفتن همون چیزی که خدا میگه. حالا باز هم وقتی خدا این سوالات رو میپرسه آیا فکر میکنید که او جوابها رو نمیدونه؟ وقتی اونها بعد از اینکه در باغ عدن مرتکب گناه شدن خدا از اونها میپرسه چیکار کار کرده ای؟ آیا فکر میکنید خدا جواب اون رو نمیدونست؟ اگر شما والدین خوبی باشید و به بچتون بگید بیرون نره و در خیابون شلوغ بازی نکنه اما بعد بیاید و او رو توی خیابون پیدا کنید آیا قبل از تنبیه از اون نمیپرسید پدر یا مادر به تو گفته بود چیکار کنی گفته بود بیرون بمونی تو چیکار کردی اونها جواب میدن رفتم خیابون و در این موقع احتمالاً شروع میکنن به گریه کردن اما این سرپرستی خوب هست شما قبل از اینکه اونها رو تنبیه کنید باید مطمئن بشید که اونها متوجه کاری که کردن شدند خوب این همون کاریه که خدا اینجا انجام میده. تو چیکار ای؟ او میدونه اونها چیکار کردن، اما میخواد از زبان خود اونها بشنوه که اونها هم همون چیز رو درباره کاری که کردن میگن. بعد اینجا سوال عمیقی هست. از کجا میایید و به کجا میروید؟ من نمیدونم آیا شما به هویت شخصی خودتون، به فردیت خودتون و به اراده خدا در زندگیتون فکر میکنید یا نه. اما اگر فکر میکنید، این سوال خوبیه. این از اون نوع سوالاتی هست که من میخوام سال جدید رو با اون شروع کنم. سالها من کلیسایی رو شبانی میکردم که در اونجا رسم و آینی بود. در ابتدای شروع سال جدید ما جلسه سه ساعتهی در نور ها داشتیم و این گرده همایی سالانه ی کلیسا بود. گزارش خوانده خانده میشد و از شبان انتظار میرفت که گزارش مفصلی از کاری که خدا انجام داده بود ارائه کنه. خب خدا چهارده سال بود که در اون کلیسا کاری انجام نمیداد. به این دلیل من از مراسم سال جدید متنفر بودم چون که چی میتونستم به مردم بگم. قرار بود که یک ساعت صحبت کنم اما چیزی برای گفتن نداشتم چون که او کاری انجام نمیداد. هرگز اون روز رو فراموش نمی کنم که بعد از ظهر روز سال نو بود و من داشتم توی اتومبیل به طرف بیمارستان برای ملاقات کسی میرفتم. از رادیو ماشین شنیدم که گوینده میگفت به نظر میرسه که سالی پر از جنگ فاجعه و بلا رو پیش رو داریم و او همینطور ادامه میداد و ادامه میداد و این واقعا منو تکون داد و در حضور خدا ناله کردم و گفتم نه نه خدا یا به هیچ وجه دیگه نمیتونم دیگه نمیتونم چنین سالی رو تحمل کنم به نظر می رسید که داشتم به خدا می گفتم اگر تو باز هم سالی مثل سال قبل به من بدی من خواهم مرد چیزهای عجیبی در سال گذشته اتفاق افتاده بود زن من بیمار شده بود و چیزهایی اتفاق افتاده بود که به هیچ عنوان دوست نداشتم باز هم تکرار بشه. اما این موجزه بود که طولی نکشید بعد از اون بحران و پیش اومد و تغییراتی شد که سالی مثل سال قبل رو نداشتیم. وقتی من ناله کردم و گفتم که نمیتونم سالی مثل سال گذشته را تحمل کنم از پس اون بر نمیام بعد چیزهایی اتفاق افتادند. من فکر میکنم قبل از اینکه او تغییراتی رو که میخواد در زندگی ما انجام بده لازمه به جایی برسیم که با درماندگی در حضور خدا ناله کنیم خب اینجا سوالی مطرح میشه کجا باید برید؟ و این منجر به سه سوال آخر میشه سوالی که از عیسو پرسیده شد که حق نخست زادگیش رو به کاسه ای آش فروخته بود تو کی هستی؟ این سوال عمیقی هست چندین بار در کتاب مقدس با این سوال مواجه میشی وقتی از ایسو این سوال رو پرسیدن او بی نهایت ناراحت شد. چونکه او نخو زادگیش رو هویتش رو به کاسه یاش فروخته بود اما در انجیل یوحنا این سوال از مردی پرسیده شده که بنا به گفته عیسی بزرگترین مردی بود که روی زمین زندگی کرده بود یعنی یحیای تعمید دهنده وقتی از او پرسیدند تو کی هستی در ابتدا نمیخواست در مورد خودش صحبت کنه او فقط میخواست در مورد مسیح صحبت کنه و تا مدت ها به همین منوال پیش میرفت بالاخره به با او گفتند ببین ما مأموریت داریم ما باید برگردیم و به کسانی که ما رو فرستادن بگیم که تو کی هستی تو چی داری که در مورد خودت به ما بگی وقتی باز هم به معنی کلمه خود فکر کنید، آیا این سؤال عمیقی نیست نظرتون در مورد خودتون چیه خب وقتی یحیای تعمید دهنده خودش رو معرفی میکرد گفت من صدای ندا ای در بیابان هستم که راه خداوند رو مهیا می‌سازد و طرق او را راست می نماید من او هستم من این هستم این جایی هست که قرار دارم این احتمال بود که بگه میتونم بیش از این باشم اما به چیزی کمتر از اون فکر نمی کنم اما او فقط گفت من کسی هستم که باید باشم اما عیسی گفته یحیای تعمید دهنده بزرگترین مردی بود که روی زمین زندگی کرده بود چه چیز بزرگی در مورد یحیی وجود داشت او میدونست که کی هست و میدونست که کی نیست؟ او مسئولیت توانایی خدادادیش رو پذیرفت معموریتش و هویتش رو پذیرفت اما در ضمن محدودیتهای خودش رو هم پذیرفت او میدونست که چه کسی نیست حالا این منظور از این سؤال هست تو کی هستی؟ تو چی هستی و کجا هستی؟ پولس میگه با فیض خدا همونی هستم که هستم او به قرنتیان میگه شما چه چیزی دارید که به شما داده نشده و اگر اونو از خدا دریافت کردید چه حقی دارید که به خاطرش مغرور بشید چه توانایی هایی، چه عطایایی، چه مهارت هایی دارید؟ هرچی چی که دارید از جانب خدا به شما عطا شده و به این منظور داده شده که کسی و چیزی باشیم و در جایی قرار بگیریم که او میخواست. خب ببینید همه اینها مربوط به چیزی هست که ما بهش بحران هویت میگیم. وقتی عیسی در باب اول یوحنا آمد، این جالبه که در عهد قدیم در کتاب پیدایش صدایی هست که در باغ قدم میزند. آدم و هوا صدا رو میشنوند اما اون فقط یک صداست در عهد قدیم اونها کتاب مقدس رو داشتن اما حضور فیزیکی خدا رو نداشتند. و بعد در باب اول یوحنا ما میبینیم که کسی میاد که صدای خداست کلام خداست او همان کلمه ای هست که جسم پوشید و وقتی شروع به جمع کردن شاگردان و رسولان نمود یهیای تعمید دهنده عملا شاگردانش رو به طرف عیسی فرستاد یحیا به اونها گفت از او پیروی کنید شما این روزها هیچ واعزی رو نمی بینید که این کار بکنه اما وقتی یحیای یه تعمید دهنده به افرادی مثل اندریاس گفت که از او پیروی کنید به اونها گفت که من حتی شایسته نیستم بند کفش او رو ببندم و اونها شروع کردند به پیروی از عیسی. عیسی به طرف اونها برگشت و سوال بزرگی از اونها پرسید او گفت چه می خواهید؟ یا دنبال چی می گردید؟ این سؤال عمیقی هست. اگر شما همه این سوالات رو کنار هم قرار بدید فکر می کنم به این نتیجه می رسید. جاهایی هست که در این زندگی قرار هست ما در اونجا باشیم. قرار هست ما شخص معینی باشیم. قرار هست ما چیز مشخصی باشیم. تنها جای شادی که برای ما ایمانداران هست همون جاییه که پولس به اون اراده نیکو و مقبول و عالی خدا میگه. من فکر می کنم این برای همه انسان ها صدق می میکنه و این یقیناً هدف از نجات هست. این یقیناً به طور خاص در مورد ایمانداران صدق میکنه اراده نیکو مقبول و عالی خداوند این هست جایی هست که شما قرار اونجا باشید و شما اونجا قرار دارید قرار هست شما کسی باشید و شما اون شخص هستید قرار هست شما چیزی باشید و شما عطایا و مهارتهای لازم رو دارید که اون چیز بشید وقتی عیسی پرسید که چه میخواهید من معتقدم اون سؤال مهمی رو مطرح کرد آیا شما می خواهید کسی باشید و چیزی باشید و در جایی قرار بگیرید که نقشه خدا برای شما هست ؟ من معتقدم این زمانی هست که شما خودتون رو پیدا می کنید. این موقع است که شما میفهمید عیسی چه چیزی رو می گفت که ارزشش بیش از تمام دنیا هست. این همون خود هست که شما نمیخواهید با هیچ چیز دیگری در دنیا اون رو عوض کنید. خب اگر این برای افراد ایماندار صدق می کنه، شاید تعجب کنید که این چه ربطی به ازدواج داره یادتونه ما در همون ابتدا گفتیم ازدواج قانون خدا هست که به وسیله اون دو نفر رو انتخاب میکنه، اونها رو یک جا قرار میده و اونها به طور مشترک والدین میشن و بعد انسانهای کوچکی تولید میکنند که پرورش پیدا میکنند تا روزی که خودشون شرکا و والدین باشن و گفتیم که این قانون خدا برای زندگی و پر کردن روی زمین هست. گفتیم که در ازدواج چهار عرصه مشکلات هست. عرصه مشکل شماره یک من هستم، عرصه مشکل شماره دو همسر من هست، عرصه مشکل شماره سه من و همسرم و تمام مسائل مربوط به سازگاری هست و عرصه مشکل شماره چهار فرزندانم هستند. و گفتیم که تنها راه کار کردن بر روی ازدواجتون از افراد شروع میشه. اون هرمی رو که قبلا ازش صحبت کردم یادتون هست؟ یک سوم ته هرم زیربنای بزرگ اشخاص بودند و بعد سلس میانی شرک ها بودند و سلس بالایی والدین بودند و ما گفتیم تنها کسی که شما میتونید کاری در موردش بکنید خود شما هستید پس روشی که میشه روی ازدواجتون کار بکنید کار کردن روی اشخاص هست و تنها کسی که میتونید بیشترین کار رو در موردش بکنید خود شما هستید معنیش اینه که شما باید با خدا خلوت کنید و بحران هویتتون رو حل کنید. این هشت سوالی که ما با اونها مواجه بودیم مانند یک قطب نمای روحانی هستم. من غالبا به اونها نگاه میکنم. حداقل شب سال نو هر سال اونها رو میبینم. حالا من احساس خوبی نسبت به مراسم سال نو دارم. دیگه مجبور نیستم گزارش سالانه بدم. بلکه در شب سال نو من به این سوالات گوش میکنم. می دونید که سوالات تغییر نمی کنند، اما جوابها هر روز تغییر می کنن. اونها همیشه تغییر می کنن. من تمام این صحبتها رو برای گفتن این مطرح کردم. کسی که شما با او زندگی می کنید، تا زمانی که پاسخ درستی به این سوالات نده، فرد شادی نخواهد بود. پس وقتی میگیم همدیگر رو درک کنید، باید خودتون رو در سطحی امیغتر به اونها نشون بدید. وقتی در این مورد با همسرتون صحبت می کنید، در مورد جوابهایی که باید به این سوالات بدید چه احساسی دارید در مورد جواب این سوالات تا جایی که به همسرتون مربوطه چه احساسی دارید یادتونه که گفتیم سطح عمیقی از گفتگوها هست که فقط گفتن این نیست که بگید لطفا اون نمک رو بده و یا امروز هوا چقدر خوبه و یا امروز باران خواهد اومد ببینید شما در مورد چیزی حیاتی و مهم صحبت میکنید من واقعا فکر میکنم این به طور جدی مهم هست که ما باید به همسرمون کمک کنیم تا این سوالات رو درک بکنه و جواب درست اونها رو پیدا کنه. سالها قبل چند نفری بودن که میخواستن به جلسه ما بیان. اونها واقعا مردان بزرگی بودن و برخی از اونها به خدمت دانشکده یک کتاب مقدس علاقمند بودن. یکی از اونها جزء مشاوران ما بود. اونها توی یک گروه کوچک جمع می شدن. حدود حدود چارپنی نفر از اونها تا هشت سال هفته ای یک بار برای مطالعه کلام خدا با هم جمع می شدن. اونها میخواستند که بیان و یک خلوت روحانی با من داشته باشه. وقتی اونها اومدن من این هشت سال رو با اونها مطرح کردم. ما حدود سه روز با هم جمع می شدیم و تنها کاری که می کردیم این بود که این هشت سال رو بررسی می کردیم. من از هر کدوم اونها این هشت سال رو میپرسیدم. هر کدوم از اونها به بهترین نحوی که میتونستند به این سوالات جواب میدادن و من تعجب کردم وقتی که جلسات ما تموم شد اونها با چشمانی اشکبار میگفتند ما فکر میکردیم که همدیگر رو به خوبی میشناسیم. ما مدت زیادی هست که با هم جمع میشیم و جلساتی داریم اما باید بگیم که بعد از این جلسه ی سه روزه ما چیزهای زیادی در مورد هم فهمیدیم که قبلا نمیدونستیم. اونها وقتی دیگران به سوالات جواب میدادند به اونها گوش میدادند. وقتی برای اولین بار این سوالات رو پیدا کردم جلسات متعددی برگزار کردم اما هرگز بیشتر از دوازده نفر توی اون جلسات نبود. و تنها کاری که می کردیم این بود که سوالات رو مطرح می کردیم و بعد اونها رو جداگانه به جای خلوتی می تا نصف روز رو به این سوالات فکر کنن بعد از اون دوباره با هم جمع می شدیم و این سوالات رو مطرح می کردیم و شگفتنگیز اینه که خدا تی اون جلسات کوچک کارهای العاده ای کرد. اینها چیزهایی هستند که من به اونها میپرداختم و دوست دارم که شما رو به عنوان یک زوج متعهل به چالش بکشم که با پاسخ دادن به این هشت سوال در سطح عمیق با هم گفتگو کنید. ها از شوهرانشون این هشت سوال رو بپرسن و وقتی اونها جواب میدن با دقت به پاسخ‌های اونها گوش کنن و بعد آقایون همین کار رو به همسرانشون بکنن و این هشت سوال رو از اونها بپرسن و به دقت به پاسخ‌های اونها گوش بدن. من معتقدم اگر این کار رو بکنید، نه تنها به عمیق ترین سطح گفتگوها دست خواهید یافت، بلکه از کارهایی که خدا ممکنه در زندگی هاتون بکنه حیرت خواهید کرد. چند نفر تا حالا چنین کارهایی انجام دادن؟ آیا تا کنون با همسرتون در چنین سطحی گفتگو کردید؟ آیا تا حالا در مورد چنین چیزهایی گفتگو کردید؟ من فکر می کنم یکی از دردناکترین چیزها در زندگی یک زن و شوهر این هست که سالها با هم زندگی می‌کنند و هرگز حتی به این چیزها فکرم نمی کنن. من نمی خیلی به دردناک بودن اونها بها بدم اما معتقدم این خدا بود که منو واداش در مورد این چیزها احساس درد بکنم و مطمئنم که از فقدان این سوالات و پاسخهای اونها متنفرم. شون با درد کشیدن درباره این سوالات و جوابهای اونها بود که من وارد خدمت شدم. من یک مددکار اجتماعی بودم و خدمت رو رها کرده بودم. به عبارتی به خدمت فکر نمی کردم. دلایل خوبی هم برای خودم داشتم و لزومی نمی بینم که اونها رو ذکر کنم. اما این سوالات و پاسخهای به اون سوالات منو در جایی که هستم قرار داد. من نمیدونم که پاسخ درست به این سوالات شما رو در کجا قرار خواهد داد. اما اگر شما رو در اراده نیکو و قابل قبول و عالی خدا قرار داد اون وقت من معتقدم که شما شادتر از هر زمان دیگری در سراسر زندگیتون خواهید بود چون من معتقدم دلیل عمده شاد نبودن مسیحیان اینه که اونها میلیون ها کیلومتر با پاسخ این سوالات فاصله دارند من به این معتقدم من سعی نمی کنم که غمگین باشم یا شما رو به فلاکت بندازم ما واعظین وظیفه داریم که به افراد مضطرب تسلی بدیم و قرار نیست که افراد راحت رو مزترب کنیم. اما میدونید بسیاری از مسیحیان هستند که در زندگی به عنوان مسیحیان شکست خورده تلقی می و خودشون حتی از این خبر ندارن. من فکر می کنم که این بسیار موسق هست. یعنی هرچند اون منفی و ناخوشاینده اما موسق هست. شما چند نفر مسیحی شاد میشناسید. مایلم شما را با این سوالات که در کلام خدا وجود داره به چالش بکشم کجا هستید جایی هست که شما باید اونجا باشید چه کسی به شما گفت یا شما به چه کسی گوش می کنید آیا از درخت ممنوع خورده اید یا آیا به دنبال جواب به خدا مراجعه می کنید یا به فرهنگ چیکار کرده اید ما باید اعتراف کنیم که چیکار کردیم از کجا آمده اید به گذشته خودتون اعتراف کنید به کجا میروید جایی هست که خدا برای شما در نظر گرفته. آیا مایل هستید که اونجا باشید؟ شما کی هستید؟ بدونید که کی نیستید و کی هستید؟ چی میخواهید؟ آیا میخواهید که کسی باشید و جایی باشید که خدا براتون در نظر گرفته؟ اول پاسخ صحیح این سوالات رو به خودتون بدید و بعد همونطور که تلاش میکنید همسرتون رو درد کنید بدونید که این مسئولیت شما هست که همسرتون رو درد کنید. شوهران معنیش اینه که زنان خودتون رو درک کنید تا او بتونه بی عیب و بدون لکه باشه تا شما بتونید او رو در بلندای قامت مسیح بی عیب به مسیح تقدیم کنید این مسئولیت شما به عنوان شوهر هست و ای زنان اگر قرار هست که شما تکمیل کننده شوهرانتون باشید چطور او رو تکمیل میکنید خب تکمیل چیه من فکر میکنم پاسخ صحیح به این سوالات کمال رو برای شما توضیح میده پس میخوام شما را به چالش بکشم که همدیگر رو درک بکنید و این سطح از گفتگوها رو مد نظر قرار بدید و این سوالات رو از همدیگه بپرسید و جواب صحیح رو پیدا کنید. حالا همونطور که جلسه قبل گفتیم اگر بخواید خودتون رو در سطح عمیق‌تری نشون بدید، باید با درگیری و خشم مقابله کنید و این آسان نخواهد بود. به این دلیل که تورینر نویسنده در کتاب خودش میگه برای درک کردن همدیگر باید این رو بخواید برای درد کردن همدیگر باید خودتون رو در سطحی امیغتر نشون بدید و برای نشون دادن خودتون در سطحی امیغتر نیاز به جسارت دارید. برای انجام این کار جسارت لازم هست. چند آیه زیبا از خدمات پولس رسول دیدگاه شگرفی از گفتگوها و درک متقابل به ما میده. او به قرنتیان میگه ای مردم قرنتس ما چیزی از شما پنهان نکرده ایم. بلکه دلهای خود را برای شما گشوده ایم اگر روابط شما با ما به سردی گراییده است این از جانب ما نیست بلکه باید ریشه آن را در دلهای خود بجویید آیا شما نباید در مقابل محبت ما همان گرمی را نشان دهید و دلهایتان را به سوی ما بگشایید من مانند یک پدر با فرزندان خود سخن میگویم چه استعارهٔ زیبایی در مورد گفتگو و درک متقابل هست پولس میگه ای قرنتیان ما درهایی در قلبمون داریم و من میخوام شما بدونید در قلب من به روی شما باز هست اما شما محبت من رو انتقال نمیدید افراد متعهل باید قلبهاشون به روی هم باز باشه بسیاری از زوجها با قلبهای بسته به هم پشت کردن چون که وقتی اونها در سطحی کاملاً امیق گفتگو کردن از هم رنجیدهاند. بنابراین قلبهاشون رو به روی هم بستن شاید به هم دیگه گفتن اگه یه بار دیگه من با تو حرف بزنم بهش برام جهنم بشه. آیا تا کنون چنین احساسی داشتید؟ من فکر میکنم که همه ما میدونیم که من از چی دارم حرف میزنم. اینجا آیه بزرگ دیگری در مورد تفاهم هست و نوعی از گفتگوهایی که منجر به تفاهم میشه. دوم قرنتیان دو دو میگه زیرا اگر من شما را برنجانم دیگر چه کسی باقی میماند که به من دل خوشیده دهد. جز همان کسانی که من رنجانیدم این حکمت هست. شما با کسی زندگی می کنید، حالا اگر شما همیشه از او انتقاد کنید او رو دلسرد سرد کنید. شما در ناامید کردن اونها موفق میشید بعد از اون کی شما رو بنا خواهد کرد جز کسی که شما دلسردش سردش کردید پس بعد اگر هر دوی شما افسرده شدید در میان گذاشتن جنبه های منفی کمک میکنه که چیزهای مثبت رو یاد بگیرید شریکتون رو غمگین نکنید و او رو به زیر نکشید بلکه او رو بنا کنید بعد از این او همین توانایی رو خواهد داشت که شما رو بنا کنه حالا بعد از ملاحظه اهمیت درک متقابل و چالشی که برای درک متقابل داشتیم بیاید ببینیم چطور همدیگر رو درک کنیم و همونطور که جلسه قبل گفتم اینجا نظر ارمیا رو داریم او میگه دل از همه چیز فریبنده و بی نهایت شریر هست عجب جمله ای هیچ کس واقعا نمیتونه بفهم اون بده. فقط خداوند میدونه، او همه دلها رو تفتیش میکنه و امیقترین انگیزه ها رو آزمایش میکنه. فقط خدا میدونه قلب انسان چطور هست، چون قلب انسان فریبنده ترین چیزها و بی نهایت شریر هست و فقط خدا میتونه شرارت اون رو بدونه. حالا وقتی شما این رو بفهمید، اون وقت متوجه حکمت داوود خواهید شد که از خدا درخواست میکنه و میگه خدایا مرا تفتیش کن و از دل من باخبر شد. مرا بیاز ما و افکار مرا بخوان. ببین آیا خطایی در من هست و مرا به راه جاودانی هدایت نما در خاتمه مسئله تفاهم، مایلم سؤالی مطرح کنم. چرا ما باید همدیگر رو درک کنیم؟ تصور می کنم جوابهای زیادی برای این سؤال هست. یکی از جوابها اینه. به وسیله درک متقابل هست که ما می بدونیم چطور مسئولیتهای زندگی زناشویی و خانواده رو تقسیم کنیم. وقتی شما ازدواج می کنید و مخصوصاً وقتی بچه دار می مسئولیت های بسیار زیادی خواهید داشت. با تقسیم کار هست که باید این مسئولیت ها مشخص بشه. من فکر می کنم بسیاری از مسیحیان می دونند که این به وضوح در کتاب مقدس توضیح داده شده. مسئولیت مرد چیه؟ و مسئولیت زن چیه؟ واقعاً مایلم که شما را به چالش بکشم که کتاب مقدس رو جستجو کنید و بفهمید که کتاب مقدس در مورد این موضوع و نخشی که به هر کدوم از افراد در زندگی داده شده چی میگه؟ اون بخش از بارهایی رو که مرد به عهده میگیره و اون قسمت از بارهایی رو که به عهده زن هست پیدا کنید. البته من فکر میکنم امروز این بیشتر فرهنگی هست تا کتاب مقدسی. افرادی هستند که در قسمت‌های خاصی از کشور به دنیا آمدند در جاهایی که مرد فکر میکنه حتی فکر رفتن با آشپزخانه و کمک به زنش کاری غیر مردانه هست. حتی به خودشون اجازه نمیدن که پا به آشپزخانه بذارن. چون که این وظیفه زنان هست. کجایه کتاب مقدس چنین چیزی میگه در واقع اینجا در آیه‌ای از عهد قدیم در دوم پادشاهان 21 خدا به اونها میگه که اونها رو محو خواهد کرد او میگه و بر اورشلیم ریسمان سامره و ترازوی خانه اخواب را خواهم کشید و اورشلیم را پاک خواهم کرد به طوری که کسی بشقاب را زدوده و واژگون ساخته آن را پاک می کند حالا این جالب نیست؟ در زبان اصلی او میگه گه همونطور که یک مرد بشقاب را تمیز می کند و آن را وارونه برمیگرداند تا خشک رود. پس مردی هست که ظرف می شوره می بینید؟ من شما را به چالش میکشم که کتاب مقدس رو بررسی کنید و ببینید که تقسیم کار چگونه هست اما اكيدن از کتاب مقدس و بعد در ابتدای جلسه بعدی کمی از مسئله درک متقابل باقی مونده که تموم خواهیم کرد شما میتونید ببینید که درک متقابل چه چالشی هست و چقدر اهمیت داره در جلسه بعدی ما در مورد روابط جنسی صحبت خواهیم کرد در مورد بعد جسمانی ازدواج مایلم که برای جلسه بعدی تکلیفی به شما بدم کتاب غزل غزلهای سلیمان رو بخونید نمیدونم که تا حالا اون رو خوندید یا نه اما وقتی بخونید میبینید مثل اینه که به صدای یک زن و شوهر تازه ازدواج کرده گوش میدید اون حرفهای های بین دو نفر هست که با هم عشق بازی میکنند حالا در غزل غزلهای سلیمان اگر شما در جلسات بررسی دانشکده کوچکه کتاب مقدس با ما همراه بودید شنیدید که اون رو تعلیم دادم اونجا یک زبان تمثیلی هست که بسیار زیبا هست که مورد نظر من نیست. اون به طور تمثیلی عشق یهوه به اسرائیل رو توصیف می کنه و اسرائیل رو به یهوه. محبت مسیح به کلیسا و کلیسا به مسیح. من گمان می غزل قزل قزلهای سلیمان با کاربردی تمثیلی نوشته شده. اما این هدف اصلی اون کتاب نیست. من فکر می کنم کسانی که با پذیرش این مطلب مشکل دارند که روابط جنسی چیز خوبی هست جز نخستین کسانی هستند که میگویند هدف این کتاب تمثیلی بوده چون که اون نمی تونه در مورد روابط جنسی نوشته شده باشه. اون کتاب باید معانی عمیق تری داشته باشه. چرا باید چنین کتابی توی کتاب مقدس باشه؟ مردان جوان یهودی اجازه نداشتند تا سن سی سالگی این کتاب را بخونند و در کلیسه ها رسم بر این بود که هیچ واعظی تا زمانی که موهاش سفید نشده نباید این کتاب را موعظه کنه. خوب خدا رو شکر من چند تا موی خاکستری توی سرم دارم بنابراین این جلسه بعدی شاید بتونم 15 دقیقه در مورد غزل غزلهای سلیمان صحبت کنم. اما جلسه بعد وقتی در مورد بود جسمانی ازدواج صحبت میکنیم شوخی نخواهیم کرد. اون یک لطیفه نیست مسئله ای بسیار جدی و مهم هست و ما جلسه بعدی بعد از پایان بحث درک متقابل به اون خواهیم پرداخت من واقعا از چیزی که معلممون گفت خیلی لذت بردم که اگه ما با همسرمون کاملا مثل هم باشیم اون وقت وجود یکی از ما غیر ضروری خواهد بود ما باید تفاوت ها رو درک کنیم و حتی قدر اونها رو بدونیم تا اینکه اتحاد مورد نظر خدا برای ازدواجمون بتونه رشد کنه. دایما دا اینه که این هفته شما این حقایق رو در زندگی زناشوییتون به کار بگیرید تا اتحاده شما رشد کنه و تبدیل به تصویر زیبایی از محبت خدا به کلیساش بشه. شما رو تشویق کنم که اون سالات رو از همدیگه بپرسید و به دنبال رشد تفاهم و محبت با همدیگه باشید. تا جلسه بعدی امیدواریم. محبت الهی اون شما رو پر کنه تا همه محبت اون رو به دیگران از طریق شما ببینن.